همانطور که پیشتر به آگاهی شما شنوندگان گرامی رسوندم روی خط تلفن گفتگویی رو داریم به طور مستقیم با آقای علی آزاد یکی از فعالین جنبش کارگری در شهر کاپنهاگ به مناسبت اینکه فردا روز اول ماه مه روز جهانی کارگر است خواستیم گفتگویی رو با ایشون داشته باشیم آقای علی آزاد ضمن سلام و شادباش اول ماهمه روز جهانی کارگر میخواستم راجب وضعیت کارگران در ایران با شما گفتگو کنم و نظر شما را بپرسم با درود و سپاس از دو تو شما و سلام به شما و بینند شنوندگان رادیو برس میخواستم راجب وضعیت کارگران ایران حد در این چهار سال گذشته چگونه بوده است حقیقتش این هست که چی مسئله ای که به چهار سال در مقابل چل سال سال های زیادی رو نیست یعنی آدم میتونه اینو در یک کلیت ببینه که همواره سطح زندگی سطح رفاه آسایش امنیت شغلی امنیت زندگی همه هر سال دریغ از سال قبل و هر سال مردم بایستی به بدبختی های سال قبلشون قبطه بخورم بگن عجب دورانی بوده. در نتیجه این چار سال به نوعی شاید رفت داشته باشه به مسئله ریاست جمهوری آخون روحانی در نتیجه خب ممکنه که برای شنوندگان شما این موضوع به علاقه بازه که چه تغییرات چه چیزایی در وضعیت زندگی به کارگران به وجود هر کسی به اندک اطلاعاتی رو داشته باشه بر به همیومیه و به اخبار همین یومیه و به روزمره رژیم رو گوش بکنه من فکر میکنم که به وضوع و استراحت داره بیان میشه. فاقر و فلاکتی که در ایران هست در قیاس میشه با کشورهای عقب افتاده ای مثل کشورهای آفریقایی یا کشورهای مثل سریلانکا جای دیگه هست علا رغم اینکه رژیم ادعا میکنه که درآمدش مثل دوره قبر احمدی نژاد نیست از یک سو در این میباله که صد میلیارد به سرا پول ذخیره شده دوباره برگشت به صندوق دولت و دولت درآمد کلانی رو در این رابطه داشت از یک سو بیکاری هست که خود دولت در اونوام میکنه که هفت میلیون نفر بیکار هستن هفت میلیونی رو که با ملاک هر فرد یک ساعت در هفته اگر که کار بکنه بیکار حساب نمیشه هفت میلیونی ای با این حساب که چی بخش وسیع از زنان اساسا به عنوان نیروکار حساب نمیشه همه اینا در کنار بذاریم جمعیت زیادی از بسیلا جامعه در حال به بیکاری عدم تأمین اجتماعی عدم تأمین پایهی ترین بسیلا نیاز جامعه از قبیل مسكن، دارو درمان در مزیغه هستند و از آن محروم هستند همه این سیاست ها، همه این مسائل به صراحت در صحبتهای خود روانی و سخنگویان رژیم خاص که ما ندونستیم به صلاح اون چیزی رو که وعده داده بودن که سفره فقیرها رو به قول معروف از برداشتن تعریمها به کار بندازن و هم سانترفوج به چرخه هم زندگی مردم معلوم شده که چی زندگی مردم خودشون هم دارن میگه نمیچرخه فقر و فلاقت هست، جنایت هست، دزدی هست، هر رقمی رو که در دولت قبل بوده و در دولتهای قبل بوده ادامه پیدا کرده و بدون شد آینده هم اخواد. از این نظر زندگی و وضعیت مردم جامعه رو آمار ارغام هم اگه نده یادم وقتی صبح هر کارگری، هر خانواده زحمتکشی که سبد خالی شو برداره به بردار توی خیابون حد حداکثر چیزی که بتونه تهیه بکنه نون و سبزیجات که در بازار به صورت فصل وجود داره بتونه تهیه بکنه توان قدرت خرید این که گوشت 4 کیلو 45000 تومان بخره راه تازه اگه بتونه به سلا گوشت مناسبی رو گیر بیاره چون مشتری غصاب نیست این طبقه اصلا مگر دوره مریضی یا دوره ای صورت بگیره دستشون به گوشت برسه در نتیجه با همه اینا نگاه بکنید میبینیم که چیزی نه در صفحه طبقه ی کارگر وجود داره که میتونن دوباره چپاول بکنن، نه رمغی در این مونده و از کنار این سرکوب های هست. شما به همین مراسم اول معامل نگاه بکنید. مراسمی که در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، هند، حتی در عراق و کردستان به شکل آزادانه داره مردم جمع میشن. جشن میبرن میگیرن بیشتر از جشن نیست در دوره خاتمی تکوری رو خوردن بعد دوباره احمدی نژاد دو اومد هی امان اف امان گرفتیم میگیریم میزنیم میکشیم که یه سری دستگیر کردن یک سیری روانه زندان کردن فقط شما حساب بکنیم برای برگزاری مراسم اول ماه شاید زیک چل پنجاه نفر روانه زندان شدن هر کنی به مدت چار سال پنج سال زندان دفتن. دوره روحانی همی شرایط نه تنها بهتر نشد شدت بیشتری رو گرفت توی کسی جراتی رو کسی نکردن که چی بتونه مراسم علمی برگزار بکنن الان توی اوج وسری انتخابات هست به قول معروف به قول وعد وعید دادن و فریب مردم هست باز در قبال مسئله خواست کارگران در قبال مسئله اول معانه همچنان سر پاک خودشون بایستادن آقای اسماعیل عبدید به عنوان نماینده قانونی معلمان هست روان زندان هست دیروز اعلام اعتصاب غذا کرده سال پیش در همین روز آقای جعفر عظیم زاده به خاطر دفاع از حقوق کارگران دفاع دفاع از این که این کار تا دومشون چون پرداخت نمی‌کنی بعد از یک سال چرا اینو پیگیری قاضاششون پرداخت نمی‌کنی تا نزدیک 60 روز توی حساب قضا بین مرگ و زندگی مردم کُنستان اینو نجات بدن. همه اینا توی ای دو هست که روحانی رئیس کشور بوده به قول خودش رئیس جمهور بوده و کلیی آورده بوده که در هر مشکل باز می‌گُرد گوی فقط به و فقط این مردم هستن کلیدشون به هیچ چیزی نمیخوره جوز اینکه چی این رژیم از بیخوب بون از بالا و بایینی سر نبون بود در نتیجه در جمهوری اسلامی یک چیزی به عنوان به صلاح پیشرفتی در سطح زندگی، معیشت، کار و آینده ای رو داشته باشه وجود نداره و این هر بار این مسئله روشن شده و هر بار وایستی نگاه بکنیم که سالهای گذشته بهتر از این سال شما زندگی رو نگاه بکنیم یک زمانی که زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده بود نون دونه دو تا دو ریال بود یا تا حتی پنج ریال بود الان نساب بکنید که نون به کجا رسیده قیلت دلار به هفت و نیمف یعنی هفتاد و ریال بوده الان کجا رسیده؟ این صد برابر، 20 برابر، 300 صد برابر که شد. آیا حزینه زندگی این حال رفت بالا، یه سطح زندگی مردم این همه اومده بالا. با توجه به اینکه رشد و بارآوری کارین همه بسترش پیدا کرد با توجه به اینکه تکنولوژی همه پیشرفت رفته با توجه به اینکه نیاز مردم بیشتر شده مردم احتیاج به تلویزیون دارن احتیاج به کامپیوتر احتیاج به اینترنت دارن احتیاج به موبایل دارد و هزاران وسیله دیگهی که اضافه شده مردم محروم هستند از بخش بزرگ از جامعه زیر فقر هستن, فقر مطلب هستن. همه این در شرایط انتخاباتی هم بوده آقاییون دست دلوازی کردن چی 960 هزار تومن فوق قرمه رو پایی حقوق حساب کنند <تصفيق> چیزی که حتی به سختی میتونه که اجار خونه خانواده چهار نفر بینده بره تامین بکنه باید 32 نفر کار بکنن که یکی اجاره, اجاره منظر تامین بکنه یکی بتونه نون خالی خونه رو تهمیم بکنه در رابطه با معلم صحبت شد دوازه اردوشت روز معلم در ایران هست و همینطور که شما گفتین در صحبتاتون یه سری فعالین معلمی هم در زندان به سر میبرند و تازیگی ها یعنی اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشسته‌ها ها روز به روز اتحادشون بیشتر میشه در ایران و در زمین اعتراض بیشتر و بیشتر شده در این چهار سال اخیر نظر شما چی هست؟ من فکر کنم که به هر صورت شرایط زندگی به مردم بهترین درسو رو میده و مردم این مسئله رو میدونن و برای این تلاش میکنن اما برای این کار هزینه سنگینی رو باسی برداخت و این هزینه سنگین برای کارگران واقعا. زجرآور هست یعنی حتی اگر شکنجه ای نباشه حتی اگر فقط و فقط ناناور خانه 5 سال شیش سال زندان بمونه کافی هست که خانواده از هم بپاشه شما حساب بکن فقط و فقط بسخی دستگیری نیست فقط به زندان بردن و زجر زندانی نیست بلکه که خانواده دور اطرافش رو به خاک سیاه می نشونه. کارگر که توی سقدرز دستگیر میکنن میبرن توی کرمان زندانی میکنن که برای رفت و برگشت این ملاقاتشن باید سیچی هزار ها خرج بکنند دعا هزار سنت ها هزار خرج بکنن که این ملاقات ساده دو ساعت رو داشته باشه. در نتیجه این همه نگاه بکنید ببینید که هزینه بسیار سنگینی هم از ذر مالی هم از ذر جسمی هم از ذر زندگی همه بردین به صلاح فعالین جنبش کارگری وارد میشه و این جنبش توان به صلاح پر کردن خلایی که هست توان این که بتونه جای دیگری رو رهبران دیگری رو حمزه بکنه امکانش خیلی سخت است. در نتیجه بعد بله بله من میبینم با همه این چیزها ابتکارات مختلفی رو میزنن تلاش های مختلفی رو میکنن. مثلا علا رقم این که اول معامل رو ممنوع کردن خب کارگرها ابتکار زدن مثلا پری روز و دیروز توی بعضی از شهرهای کردستان از جمله سنندج مثلا راقه ماهی وزاشتن پیشاپیش پیش به استرواد اول ماه می رفتن <تصفيق> همچنین اکسایی رو من توی شبکه مجازی دیدم که برفی از فعالین کارگری در کرج مثلا گلگشتی رو گذاشته بودن درهندی جمع شدن و روزو گرامی داشتن آقای عباس عبدی در داخل زندان این مسئله به صلاح مطرح کرد اسماعیل عبدی ببخشید در داخل زندان اعلام اعتصاب قضا کرده و ته بیانی مسائل و مشکلات جامعه کارگری و به خصوص معلمان به همچنین جور می رو که به او چی او رو قرار داد در نتیجه این مسئله و با های مختلفی از سوی کردن و به خصوص به صلاح پیشروبان جنبش کارگری رهبران عملی جنبش کارگری صورت بگیره اما متاسفانه چنان شدید و کوبنده و به صلاح تحصیل هست که پر کردن این خلق سالهای سال نیرو میخواد، سالهای سال انرژی میخواد تصیبست شارخ زمانی سال گذشته در زندان به قطر رسید پر کردن یه چنین فردی یه چنین انسانی با تجربه یه چنین انسانی که بتونه با این همه از خود گذشتگی معاونت سربلندی اصطادگی بکنه یک نسل بایستی سپری بشه در جای اون پر بشه متاسفانه هر دوره ای این به فاجعه فاجه صورت میگیره دوره شست که پاکسازی عظیمی از فعالین کارگری طرفداران جنبش کارگری پاک کردند. دو دهه برای قبرستان حکومت کردند. باز دوباره شروع شد سال 88 همین کارو رو کردن هر دوره رهبران های عملی رهبران جنبشای دانشجویی، رهبران زنان هر کسی رو که جنبی پلاصه سربنیست کردن یعنی چیزی جدیدی رو نیست که ما با معو جدید یا با رئیس جمهور جدید یا با رهبر جدید به اصلا سرکار نیستیم با یه نظامی سرکار داریم که از بنیانش ضد آزادی کارگر ستیز جماعتی از لود و رازنگ به قول معروف مثل مغلبار در جامعه حاکم شده در رابطه با رئیس جمهور جدید گفتین روز بیست و نو انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران هست همزمان با این انتخابات انتخابات شوراها و شهر است. بین تقریبا 1700 نفر کاندید ریاست جمهوری 6 نفر شورای نگهبان انتخاب کرد که مناظره اولین مناظره هم روز جمعه در, ش... در ایران برگزار شد. نظر شما نسبت به این انتخابات و کاندیدای مطرح شده در 6 نفر که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن چی است؟ گفته میشه که ابراهیم رئیسی یکی از افرادی است که در کمیته مرگ در سال 67 شرکت مستقیم داشت. بله من مرسی... خدمت شما و شنوندگانتون رو عرض بکنم که من اصلا نواجه انتخابات و اصلا نادرست و ناسعی میدونم چیزی به عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی وجود نداشت اصلا فلسفه سیاسی این جریان فکری با انتخابات در تضاد بود تاریخا این جریان با مسئله انتخابات مشکل داشت تاریخا اصلا با حق سرنوشت مردم در سرنوشت سیاسی مخالف بودن بارها بارها حدیث آوردن آیه بردن خودشون از منبر نماز جمعه تا پشت تلویزیون اومدن گفتن که ما با دموکراسی مخالفیم خمینی پرش ناموسی میدونسته دموکراسی رو در همان اولین مزحکه انتخاباتی و نه یک کلام بیشتر نه یک کلام کمتر اسلامی و قانون قانون الهی آقای جنتی در نماز جامعه توی مطبوعات خودشون این اعلام کرده که چی؟ ما مشروعیت خودمونو نه از مردم بلکه از صاحب زمان که ما نمیه 1400 سال،, سال پیش یک قیب شد آمد چیجوری اینا ازش مشروعیت گرفتن؟ می اون جواب کسی نواسی باشی ما به مردم نواسی جواب گوش ما تو خدا باشی که باشی من من نمیفهمم که چرا بایستی چنین مزحکه ای رو که خودشون با صراحت رو اعلان اعلام میکنن که شما حق دخالت ندارید ما چوبان هستیم شوان هستیم و شما اومد به حال معروف مردم گله هستید ما واسه شما را هدایت بکنیم. چه چیزی هست که بایستين رو انتخابات رو با؟, با کدوم ملاک و معیار بایستين سنجو این انتخابات هست یک مجلس از چوپان نشستن که چی چوپان دیگه رو پیدا بکنن برای گله مردم و چه چیزی هست؟ با کدوم ملاک انتخابات در میاد اونا نشستن شروع کرده چهار نفر از دوست و که از خودشون هستن انتخاب کردن گفتن که ای مردم دیگه این یکی انتخاب بکنون اینم نیست اون کسی که رعبر اصله تر درسته احمق تر با خودش جنا جورترف که رو چی از داخل صندوق میکشن بیرون چه چیزی به عنوان انتخابات هست همستو اولین انتخاباتی که به قول خودشون بزاشتن چه چیزی بود مگه غیر از این بوده که وقتی مردم گفته که جمهوری اسلامی که شما چی از توش موقع نمیشناسیم به این تشریع بکنی برنامه اقتصادی شما سیاسی شما بگید هر چی که هست تو قرآن هست، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. از همون ابتدا بر مبنا رو برای این گذاشتن که بین و بد و بدتر شما یک انتخاب بکنید یا باسی برگرده به سلطنت یا اینکه برگرده به جمهوری اسلام بین این دوتا چیز دیگه وجود نداره الان هم همین چیز دیگه وجود، تمامی انتخابات همین همواره مردم به یکی، یکی، بعد یکی، بدتر میگه بگیرید و این مسئله برای خودشون اهمیتی رو نداره اصلا با سراغت اعلام میکنی که ما مشروعیت ما مسئله از طریق انتخابات و مراجع به مردم نیستیم اما اون چیزی که به این مسئله برایشون اهمیت داره کشورهای جلیه اروپایی هستن کشورهای بین المللی هستن بعضی از اعضاب و جریانات سیاسی داخل ایران هست که کاسه گرم پرزاش شدن چنین مسئله کهی رو به عنوان انتخابات دارن مردم میدن. جرجاناتم از ابتدام همین بود نه که الان باشه شما نگاه بکنی جرجانات ملی مرسخبی تحت هر شرایطی توی انتخاب شرکت شرفت کردن هموارم بینی این و اون بحانه بود یک دوره حضب تودو اکثریت به خاطر مسئله نمیدونم خط امامی رو نمیدونم این در قبال این ریبرال در قبال واسه حمایت بشه از وحشیترین ترین آدم های مثل خلخالی رو نمیدونم خامله ای به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهوره کاندیر اینا بوده رعی دادن الان به جنای دیگری که به نوعی به قول معروف دیگر از در دیوار پریدن سپارت ترک کردن حالا قرار فرش قرمز براشون بندازن د این مسئله همباره بین بد و بدتر، همباره بین این که چیه سری رو شورای صفیان انتخاب بکن و مردم تعمیل بکنه، وجود داشت. چیز جدیدی نیست. در نتیجه ما چیزی رو نداریم. اون چیزی که هست، یک مذهبی انتخاباتی هست که متاسفانه بعضی از جریانات سیاسی داخلی ایران و عمدتاً مطبوعات خارجی هستن. تو بی بی سی و رادیو فردا صحبت میکنه، تحلیل میکنه، آنالیز میکنه، انگار که مثلا انتخابات فرانسه در کار بوده. چی افکار عمومیش چی گفته؟ چی نگار چی گفته؟ این یکی این زاده چه معنی، چه چیزی؟ آقای رئیسی جنایتکار هست. و خودش اعلام کرده و پشتش هست. اون شخص نژاد جمهوری اسلامی بهش میگید تو جنایتکار تاریخ هستی ده ها هزار نفر خانواده زندانی سیاسی که قبر رو و گول و کفر و بچهش رو کجاست شاکی هستن چرا چنین کسی رو دستگیر بکنم چرا توی, توی پرونده پولیس بینورمالی نباید دونبال چنین شخصی رو باشه جنایتی که اون کرده در قبار پینوشه اصلا پینوشه فرشته ملاعط هست چرا بایست این مهمال کاندید مطلب بشه؟ این ده دهنکجی به جمع دنیا هست دهنکجی ده به حقوق بچر هست چه کسی اینو در چیز میکنه کسانی هستن که چی تجارت و روابط دیپلماتیک و نمی دونم بدبستان براشون اهمیت بیشتری از این داره که چی به حقوق انسانی به شرافت انسانی به مسائل زندگی مدرن و بشریت توجه داشته باشن کدومشون سابقه جنایت ندادن کدومشون دروگو نیستن؟ کدومشون دوز نیستن؟ پرونده آهای غالباف همیست توی دادگاه رو خواب میخوره کسی که اومده افشا کرده افشا تازه به صورت سربسته اعلام نکرده یکی کی هست این همه زمین رو به دور اطرافشون دادم، به خانومش داده به فلا کس داده هیچ سمتی در شهرداری نداشت آخو نویسنده و نگاری که خیلی فاش کرده داخل زندان هست وکیل مجلسی که به قول خودش آقای صادقی مساله مطرح کرده احضار شده به دادگستری. این شخص کسی نیست که در صلاحیت چنین شخصی رو نیست کسی که اینو به عنوان کاندیت میخواد مطرح بکنه کسی بخواد بین انتخابات بگه من فکر میکنم اگر از عرب دور نباشه آقای مورزی هست چه انتخاباتی هست؟ به چی؟ چه چیزی از این درامه؟ چه حق و با کدوم میار ملاک به جهانی؟ چه میدونم حتی کشورهای دکتاتوریم چنین مسئله ای رو به انتخابات نمیگم؟ شورای شهر اعلام میشه، شورای شهر آقا از سری انتخابات بکنن، باید بید تازه رئیس مجلس ابلحان داره مطرح میکنه که شهربند بقایی شهربند، ارمنی شهربند یهودی حق نداره که نماینده بشه. زن توی نصف جامعه هست بهش میگی تو رجال نیست تو صفیح هستی. در کدوم مملکت در کجای دنیا هست که نصف جامعه رو که شما نمیتونید. اگر رو ندارید که شما بیایید رئیس جمهور بشید یا وزیر بشید. چه مرمکن میاری باید چنین وقاحت و چنین جهالتی رو انتخابات تعبیر و تفسیر کرد. این <تصفيق> هنکجید به اون دموکراسی نیموند و لیبرالی یه که توی دنیا به صلاح داره بازارگرمی میکنه برای کشوندن مردم به پای صندوق چرا بایستی عذاب جریانات سیاسی که خودشون به قول معروف ادعای دموکراسی دارن بایستی چنین کسان رو ربان نماینده از مردم بخوان که بری رای بدید برید بین یکی از دوزده یکی دوزده دیگر رو انتخاب بکنی، بین یه جاهل و صفی بریدی آدم دیگه ای رو پیدا بکنید. شایسته مردم هست که چه مردم پای صندوق شیدن؟ چه فرقی هست بین احمدی نزار نجات دوز به آقای روانی اون ست ها میلیار دوزدید این هم دوزدید. این همون جنایت رو کرده که اونم کرده. و قبل از اونم مگه چه کسی بوده. همه تکلیف رژیم روشن نکرد، تکلیف انتخابات مزخگی انتخاباتی روشن نکرد به هر بار، هر چهار سال این سحنه کری و زشت و پسیفی که توهین به زنان هست تا به مادران ماست، تا به خواهران ماست گنار ما رو صفی میگونن حتی, حتی کاندید کردن ندارن بسی به رسمیت بشناسیم خیلی ممنون و سپاسگزارم، آقای علی آزاد یکی از فعالین <مدرنت> جنبش. طبقه کارگر در شهر کپناک ضمن شادباش دوباره اول مائمه روز جهانی کارگر به شما و همه دوستانمون در شهر کپناک من متقابلم به شما شنوندگان شما به کسانی که صدای مار میشنوند روز اول مائمه رو تبریک میگم امیدوارم که شما هم در آوس روز خوبی رو داشته باشید روز آفتابی جشن باشکویی رو داشته باشید اضافه این که در به صورت ما بخشی از آنی در مدن دام مارکاپ هستیم برای تلاش برای کاهش ساعت کار برنامه کارگران پیشرو و رادیکال جنبش کارگری دانمارک است امیدواریم که همه با همدیگه در جهت بهتر شدن شرایط کار و زیست و امنیت طبیقه کارگر یا در روقت خودمان، امنیت زندگی خودمون تلاش هماهنگی را برای کرسی نشوندن مطالبات داشتیم. در زم شما فردا اول ماهمه یه برنامه در شهر کپنا کتابخانه پوینده برگزار میکنید این میشه یه توضیح خلاصه از برنامه فردا بدید؟ نام دو قسمت بود یک قسمت در رابطه با شب همبستگی با جنبش کارگری ایران بود که دیشب برگزار شده بود و به صلاح تعدادی از فعالین کارگری طرفداران جنبش کارگری ایران در شرکت کردند و شب خوبی بوده تونستیم بسیاری از به صلاح مسائلی که در رابطه با چگونه بتونیم به همبستگی و یا حمایت خودمون از کارگران ایران داشته باشیم صحبت کردیم به اضافه این اینکه تجربه سال قبل بوده که در چنین روزی اعلام اعتصاب غذای آقای اسماعیل ابدی و فعالین کارگری بوده و نتیجهش آقای عظیمزاده بوده که مدت طولانی به حالت مرگ و زندگی رسیده بوده در نتیجه ما نگرانی وضعیت آقای اسماعیل عبدی هستیم که این اعتصاب ممکنه طولانی مدت بشه و برای اون به صلا برنامه و چیز شدیم که چجوری بتونیم در یک کمپین بیندون برای حمایت از جان اون و خواستا مطالبات او بتونیم تلاش بکنیم و فردا طبیعتاً باز ما در همین رابطه اعلامه رو داریم به زبان دامارکی انگلیسی فارسی و عکسای این عزیزان هست که به صورت پوستر توی تزارات به صلا پلاکارد میکنیم میبریم و همراه کارگران ادام توی تزارات شرکت میکنیم به سمت پارکی که در کوپناگ محل جمع شدن کارگران هست، فیلپاپکت هست که ما اونجا شرکت میکنیم در اونجا میز کتابی رو داریم و چادری رو داریم و صورت دور هم دیگه جمع میشیم های مختلفی میان و اونجا میتونیم کار آگوگرانه، تبلیغاتی و غیره را داشته باشیم بتونیم با برخی از فعالین کارگری امار در رابطه با وضعیت جنبش کارگری صحبت بکنیم و توجه اونها را نسبت به وضعیت و شرایط کارگران زندانی در ایران جلب بکنیم با سپاس دوباره از شما آقای علی آزاد ممنون از شما و ممنون از شنوندگان شما امیدوارم که موفق و پیروز باشیم